افسان. موسیقی به نام خدای یگانه مهربان سلام بازگو تا قصه درمان ها شود بازگو تا مرهم جان ها شود افثانه ها تاریخ اقوام مختلفن و از رویدادهایی سخن میگن که بعد از آفرینش جهان اتفاق افتاده و راوی و مخاطب و خاننده اونو باور دارن این بار در برنامه هزار افسان به سرزمین کهن و زیبای گیلان سفر میکنیم و افسانی رو از مردمان مهروان و زحمتکش این دیار براتون نقل می‌کنم به نام افسانه مرغابی سفید کاکولی برگرفته از کتاب های مردم گیلان جلد دوم به گردآوری و بررسی دکتر علی تسنیمی شما رو به شنیدن این افسانه زیبای گیلانی دعوت کنید روزی روزگاری در سرزمین سرسبز و زیبای گیلان امون مراد با زن و تنها دخترش روشنک زندگی میکرد. اونا کلبه محقری در وسط جنگل داشتن و زندگیشون هم راضی بودن. روشنک روزها سرگرم بازی بود و گاهی هم در کار خونه به مادرش کمک میکرد. امون مراد که پدر خانواده بود وقتی پاییز میرسید و دریا طوفانی میشد تفنگ و تور ماهیگیریش رو بر و سوار بر می شد و به مرداب می رفت فصل پاییز، فصل کوچ مرغاویا بود. اونا فوج فوج به طرف مرداب حرکت می‌کردند و این فرصت خوبی برای شکار اونها بود. وقتی عمو مراد از شکار مرغابی به خونش برمیگشت، کوله بارش رو بر زمین گذاشته به زنش می میگفت: زن، زود باش سهم همسایه ها رو بده تا کار و برکت پیدا کنه. و این نشوندنده مهربونی اموموراد بود. خلاصه اونا زندگی آروم و خوبی داشتن تا اینکه روزی از روزها روشنک برای جمعبری هیزم به جنگل رفت. روشنک همین که پاش رو از خونه بیرون گذاشت احساس کرد سایه اونو دنبال میکنه. ترس تمام وجود روشنک رو فرا گرفت. دختره که بیشاره با قدم شتابان به این طرف و اون طرف دوید اما ساگه همچنان اونو دنبال میکرد روشنک هرچی سعی کرد فریاد بزنه و کمک به طلبه نتونست خلاصه هر طوری بود خودش رو به نزدیکی کلبشون رسوند و در همون نزدیکی کنار پرچین خونه نقش بر زمین شد و از هوش. رفت. امو مراد که به شکار مرغابی رفته بود به خونه رسید و دید که زنش نگران و مستره به انتظار ایستاده. امون مراد با دست به زنش نزدیک شد و پرسید چی شده زن؟ چرا آشفته و نگرانی ها؟ روشنک کجاست؟ زن با نگرانی جواب داد روشنک؟ روشنک؟ یه ساعتی میشه که رفته ایزون بیاره ولی ولی هنوز برنگشته؟ دلنگرانم میتسم خدای نکرده؟ امون مراد اونو آروم کرده و گفت آروم باش زن آروم باش هیچ اتفاقی نیفتاده. حتما سرگرم بازی شده و الان توی راهه زن گفت خوبه بری و توی جنگلی گشتی بزنی شاید اونو ببینی اما مراد گفت باشه باشه میرم تو هم برو این مرغابی رو بین همسایه ها تقسیم کن و نگران هیچی نباش برو. امون مراد اینو گفت و به طرف جنگل براه افتاد. به جنگل که رسید به همه طرف سر کشید و روشنک رو صدا زد. اما هیچ خبری و چیزی دستگیرش نشد که نشد. حالا دیگه امون مراد هم نگران دخترش شده بود. هواداش تاریک می شد اما مراد با نومیدی به طرف خونش به راه افتاد. توی راه با خودش می آه خدایا حالا جواب این زن بیچاره رو چی بدم؟ خدایا چه بلایی سر دخترم اومده؟ نکنه، نکنه درنده ای بهش حمله کرده. نکنه توی رودخونه افتاده باشه خدایا. و بعد با تمام وجودش، خدا رو فریاد زد و از اون خواست که دخترش رو صحیح و سالم بهش برگرده. امو مراد همینطور که به طرف خونش میرفت احساس کرد کسی اونو به طرف پرچین نزدیک کلبه هدایت میکنه با خودش گفت آه پرچین آره ممکن اونجا رفته باشه با قدمهای شتابان به طرف پرچین نزدیک کلبه رفت و با کمال تعجب دید که روشنک یک گوشهای نقشه بر زمین شده امو مراد با دستپاچگی دخترش رو از روی زمین بلند کرد و گفت روشنک روشنک جان دخترم چه بلایی سرت اومده چی شده چیزی بگو بابا جان دخترم روشنک آروم آروم چشاش رو باز کرد نگاهی به پدرش انداخت اما نتونست حتی یک کلمه به زبون بیاره بله از اون به بعد دخترک افسانه ما دیگه چیزی نگفت انگار کرولال مادرزاد بود سالها بر همین نموال گذشت و اما مراد و زنش برای درمون دخترشون بر هر دری زدن اما درد دخترشون دوا نشد که نشد تا اینکه روزی پیرزنی زنی از کنار کلبه اونها میگذشت پیرزن وقتی اما مراد و زنش رو دید به اونها نزدیک شد و گفت میشه کمی آب به من بدین؟ از صبح را افتادم و تا الان تشنگی رو تعمل کردم آه، تا خونه دخترم کلی راه مونده ولی دیگه نمیتونم قدم از قدم بردارم با هم دیگه جون نداره زن مراد فوری رفت و برای پیرزن یه پیاله آب آورد پیرزن بعد از نوشیدن آب دعا کنان گفت آه، نه. خدا خیرتون بده دشتم از تشنگی حلاک می شدم مراد به پیر زن گفت مادر جان اگه میخوای میتونی امشب و پیش ما بمونی و خستگی در کنی و فردا اول وقت به خونه دخترت بری زن امون مراد هم اضافه کرد آره مادر جان داره تاریک میشه بهتر اینجا بمونی پیرزن قبول کرد و شب و پیش اونا مون. بله پیرزن شب رو پیش عمو مراد و زنش موند موقع خوردن شام پیرزن از سکوت روشنک پرسید و مادر روشنک با ناراحتی و بغز تمام اونچه رو که بر اونها گذشته بود برای پیرزن بازگو کرد پیرزن که مهر و محبت خانواده رو دید به اونها گفت نگران نباشین من چاری درد دخترتونو رو میدونم امو مراد و زنش با شنیدن این حرف دور پیرزن حلقه زدن و با خوشحالی گفتن مادر جان ما باید چیکار کنیم ها دوای درد دخترمون چیه پیرزن گفت آه چاره درد دخترتون جگر مرغابی سفید وحشی کاکولی مادر درجان مراد گفت مرغابی سفید وحشی کاکلی پیرزن گفت، آره، آره، مرغابی سفید وحشی کاکالی. اگه بتونی اونو شکار کنی، دخترتون زبونش باز میشه و به حرف در میاد. زن با ناباوری پرسید، یعنی، yani, یعنی yani درمون دخترم توی خوردن جگر مرغابی سفید کاکالیه؟ پیرزن سری تکون داد و گفت، البته. البته دخترم البته امون مراد با خوشحالی گفت همین فردا میرم و مرغاوی سفید کاکولی رو شکار میکنم و میارم از فردای اون روز امون مراد شکار چی توفنگش رو برداشت و به طرف مرداب رفت دست دسته مرغاوی وحشی به مرداب می میومدن اما دریغ از یه مرغاوی سفید کاکلی سالها گذشت و اما مراد هر روز به امید شکار مرغابی سفید کاکولی به اطراف مرداب می رفت. اما دست خالی و نومید به خونه برمی کشت بله دریق از مرغابی سفید کاکولی غم و اندوهی بزرگ در خونه یه مراد رو زده بود اما مراد دیگه دل و دماغ کسی رو نداشت و به داخل شد و یک گوشه ی کلبه افتاد. در این سالها روشنک هم بزرگ و بزرگتر شده بود. کم کم زمستون از راه رسید و دوباره مرغابی های وحشی به اطراف مرداب کوچ کردند. یه روزی زن ام مراد سرش رو با آواز مرغابی‌های وحشی از کلبه بیرون آورد و دنبال گم شدش گشت. مرغابی‌ها دست دست داخل مرداب می نشستن و دوباره به آسمون پاک خدا پر می کشیدن. تا به حال سابقه نداشت این همه مرغابی یک جا به مرداب بیان روشنک با دیدن این صحنه لبخند زد زن امون مراد که لبخند روشنک رو مدت ها ندیده بود دید که لبخند قشنگی روی لبای دخترش نقش بسته برگشت و به آسمون نگاه کرد و دید فوجی از مرغابی های وحشی به آسمون پرکشیده. مرغابی ها چرخی زدن و داخل مرداب نزدیک کلبه اموموراد نشستند. در این موقع تمام مرغابی ها با هم به آسمون پرکشیدن و زن به اونها چشم دوخت و در میون این همه مرغابی یه دفعه چشش به یه مرغابی سفید کاکلی افتاد زن با خوشحالی و ناباوری فریاد زد مرغابی سفید کاکلی مرغابی سفید کاکلی عمو مراد با شنیدن فریاد زنش خودش رو به بیرون کلبه رسوند و گفت چیه زن مرغابی سفید کاکلی کجا بود چشمت خطا دیده زن با اطمینان خاطر گفت خودم دیدمش خودم دیدمش زود باش زود باش تو بیار زود باش مرد چرا وایسادی امو مراد که نمیخواست دل زنیش رو بشکنه تفنگ رو برداشت و نشونه گرفت اما تیرش خالی نشد با نومیدی تیر دیگه ای رو به طرف مرغابی های وحشی نشونه گرفت و در این موقع بود که اون هم مرغابی سفید کاکولی رو میون مرغابی های دیگه دید فوراً یه تیر دیگه رو آماده کرد و به طرف مرغابی سفید کاکولی نشونه رفت. تیر به پر مرغابی سفید کاکولی خورد و اون رو به ساحل مرداب سرنگون کرد. اما مراد و زنش با شتاب به طرف ساحل مرداب رفتن و مرغابی رو برداشتن. امو مراد مرغابی سفید کاکلی رو از زمین برداشت و چاغوی رو که زنش برای بریدن سر مرغابی سفید کاکلی آماده کرده بود گرفت و خواست سر مرغابی سفید کاکلی رو ببره. هنوز بسم الله نگفته بود که مرغابی کم کم به شکل جوون زیبایی در اومد. امو مراد و زنش ترسیدن خودشونو عقب کشیدن و جوون بونا لبخندی زد و با مهربونی گفت: سلام از من نترسین. من من آدمیزادم مثل خودتون. امون مراد و زنش همچنان موت و مبهوت جوون رو که از دستش خون میچکید نگاه میکردن. جوون ادامه داد. نترسین نترسین. من یا آدمیزادم که جادوگر پیری منو به این شکل درآورده برده و به من گفته کسی که میتونه نجاتم بده اون طرف دریاه هست. یه شکارچی به اسم امون مراد که یه دختر زیبا به نام روشنک داره. عمو مراد با شنیدن این حرف با تعجب به جوون نگاه کرد و گفت یعنی yani, یعنی yani من نجات دهندی تو هم جوون با خوشحالی گفت تو تو عمو مرادی عمو مراد لبخندی زد و گفت درسته من عمو مرادم اینم زنمه جوون نگاهی به اطراف انداخت و پرسید پس پس پس روشنگ دخترتون کجاست؟ هنوز امون مراد جواب جوون رو نداده بود که روشنک از راه رسید و با دیدن جوون به حرف اومد و گفت من روشنکم خوش اومدین امون مراد و زنش با شنیدن صدای دخترشون خدا رو شکر کردن چند روز بعد هم جشن عروسی جوون و روشنک برپا شد بله دوباره کلبه امومراد رنگ صفا و صمیمیت به خودش گرفت و از اون روز به بعد بود که مرغابی سفید کاکالی در خونه روستاییان سرزمین گیلان مایه بخت و اقبال به حساب میانند افسانه مرغابی سفید کاکلی رو از مردمان سرزمین زیبا و کهن گیلان براتون نقل کردم. برگرفته از کتاب های مردم گیلان، جلد دوم به گردآوری و بررسی آقای دکتر علی تسلیمی. افسانه ها بخشی از میراث معنوی مردمان هر سرزمین به شمار میرن. برای شناخت این گنجینه شفاهی ارزشمند، باید گام‌های استوار برداشت. و دستاورد پژوهش‌ها و تحقیقات اندیشمندان رو گردآوری، ضبط و ثبت کرد و به نسل جوان و نسلی که فردای هر سرزمین از آن آنهاست سپرد هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالپور ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صدابردار حیدر صفتری قیق کننده زهرا عبدالله زاده تا افثانه دیگر بدون